امسال که ما ماه اولش وارد شدیم سه هزار سال میگذرد که نخستین پیغمبر یک تا پرست قدم به عرصه وجود نهاد و از اون به بعد یعنی در عرض این سه سال تنها چار مذهب پیروه مذهب یک هستند که اول از همه مذهب زرتشتی بعد یهود بعد مسیحیت و بعد اسلام ولی هنوز اکثریت مردم مذهب بودپرستی یا شرک دارند. مثل هندوستانو، و افریقا و چین و جاپن و وزیجه دیگر با وجود اینکه بشر میلیون ها سال است که بر روی این زمین پیدا شده هنوز همه بشر موفق به درک توحید نشدیم. چرا برای اینکه سطح فکر مردم در هر دوره فرق داشته و حتی، پیروان هر مذهبی هم همشون سطح فکرشون یک جور نیست یکی فکرش به اعلی درجه ترقی یکی حد متوسط یکی هنوز هیچ ترقی نکرده و کورکورانه به اصطلاح هر جوری که دیاران میکنن او هم تقلید میکنه بدون اینکه بفهمه پس بشر از روزی که دارای عقل و خرد شد همه چیز را نمیتونست درک کنه بشر اولیه وقتی خورشید را دید که از مشرق میره به طرف مغرب با خودش فکر کرد این چیه چرا هر روز این کار, این کار میکنه ماه چرا گاهی نو میشه گاهی پر میشه و گاهی اصلا تاریف میشه شب ما نیست. و این اساس دین و مذهب رو این فکر قرار گرفت. یعنی مذهب یک چیز تعبدی نیست که مجبور باشه پیروی کنه مذهب نتیجه فکر و اندیشه و پژوهش در کار غلغت بشر وقتی در غار کو زندگی میکرد، همه اسباب و اساسیاش از سنگ بود هنوز آتش پیدا نشده بود غذا که میخورد گوشت خام میخورد مثل حیوانات او اونم دانشمندان اون زمان گفتن کوه خدای ماست و کوه را مادر تصور میکردند و میگفتند ما در رحم مادر زندگی میکنیم یعنی در رحم کوه و کوه را مادر آفرینش میخوند و باورش نمی اومد که یک خدایی باشد که انسان را به وجود بیاره ولی زن نباشه پس خدایان اولیه بشر همه از جنس مؤنث و زن بودند. پس بشر قارنشین اولیه معتقد رود آفریدگاه و خدای اونها کوه و اونها در رحم کوه قرار گرفتند و اون مادر آفرینشه و همه چیز که ابزار و اساسیه که لازم داشت همه از سنگ می ساخت وقتی یک جایی می رسید سنگ رو هم می گذاشت و شروع میکرد به عبادت کردن وقتی از یه جایی میخواست از غارش در بیاد بره یه جایی دیگه برای که سالم و تندرست برگرده به غار اولیه یه دو تا سنگ هم میذاشت و از سنگ حاجت میخواست که او را دوباره طلب کنه به منزل و محوای خودش بعد از دوره جماعت پرستی یا سنگ پرستی انسان میرسه به مرحله گیاه پرستی یعنی در محیطی که زندگی میکرد هر گیاه یا هر ای که بیشتر باعث صحت و سلامتی و تغذیه اونی شد اون یک نوع حالت تقدسی بهش میداد مثلا مردمان عرب خورما را خیلی مقدس میدانستند. و به طوری که در کتاب های مقدسشون نوشته سه چیز تقریبا باعث این بود که رزق و روزی اونها را رو بده یکی خورما یکی زیتون و یکی انجیر و این رو مقدس می دونستن و موقعی که مراسم دینی چه دین و چه مراسم خوشحالی و نوروز و جشنهای خودشون و چه مراسم مرده همیشه خورما یا انجیر یا زیتون تعارف هم دیگر می بعد از مرحله گیاهپرستی، انسان می رسه به مرحله حیوان پرستی یعنی هر حیوانی که در حوالی زندگیش بیشتر به دردش می خورد اون حیوان مقدس می شد و یک نوع حالت مافوق بشر پیدا میکرد مثلا در عربستان شطور حیوان فوق مفیدی بود برای عربا این بیابان خوش و راه‌های دور تنها شطور به بپیموئه این بود که شطور مقدس شد بین این قوم و به شطور نمیگفتن یک راز شطور میگفتن یه نفر شطور چرا برای که این شطور را از مرحله حیوانی بالا برده بودند به مرحله انسانی رسیده بودند؟ در جاهایی که کشاورزی می کردن مثل هند و بینو و ایران و مصر گاو خیلی مهم بود و اونم گاو ورزا یعنی گاو نر برای اینکه این گاو در زندگیش العاده مفید واقع می شود. مثلا گاو را میداد بار ببره کراش می آوردن میدادن به صاحبش شخ میزد کرایش میدادن به ساعت یا بار می برد کارهایی دیگر میکرد. این بود که این ملت گوشت گاو را حرام می‌دونست و گاو را هیچ وقت نمی کشت و حتی در مز پرستی شروع شد. گاوی آپیش، یکی از خدایان بزرگشون حساب میشد. در ایران قدیم می گاو گاب و اسب کارزاری را نباید برید و خورد چرا برای اینکه مثلا یک زنی شوهرش وقتی میمورد خودشو سه تا بچه و یک گاو که رسن به از شوهرش بش رسیده اگر یک وقتی مهمان پیشش می رسید و چیزی نداشت بهش بده این گاو را میکشت و گوشتشو خورده مهمان میداد خودشو از درآمد یک گاو که به اندازه درآمد آدم اون روز بود محروم میکرد پس این گاو را نمیکشت و الان هم در هندوستان کشتن گاو حرامه خوردن گوشت گاو حرامه بین ما زردوشیانم هم سابق نمیخوردیم بعد از دوره حیوان پرستی انسان میرسه به دوره قهرمان پرستی یعنی هر سرداری هر فرمانده لشکری هر پادشاهی که قوم خودش را از شر دشمن نجات میداد و باعث میشد که دشمن شکست بخوره و فرار کنه این را بعد از مرگ میگفتن زنده هست و ما هم شعر داریم به فارسی هرگز نمیردون که دلش زنده شد بهش و در شاهنامه و کتاب‌های قدیم پهلوی اگه خوانده باشید شاکه خسرو یکی از پادشاهان عادلی بود که ما معتقدیم زنده از دنیا رفته یعنی هنوز زنده است و در تندرستی که میخونیم هنوز براش تندرستی میخونیم شاک خسرو برجاواند را دستور پشوتن را پیغمبر حوشیدر را حوشیدر ما را حوشیدر بامی را شانس را شاب احرام برجاواند را اینا میگیم هنوز زنده هستن و در جشن و آفیگونخانی به نام ایدر یاد باید انوش روان برای اینها نمی کنیم و اینها را زنده جاوید میدونیم بعد از مرحله قهرمان پرستی می به مرحله شرک یعنی برای هر چیزی یک خدای قائل بودن براش و هنوز هم مذهب هندوها قسمتی از مذهب چینی ها و جاپانی ها تا به اون مذهب حالا مفهده افریقاییام، هم اونام خودش. خودشون بعد از مذهب شرک خدایان متعدد مثلا در مذهب هندی میگن سوسه میلیون خدا وجود داره یعنی برای هرچ موجودی براش یک خدای قائلاند پس بعد از شرک آمدند این خدایان را در سه بخش تقسیم کردند و در رأس این خدایان یک خدا که از همه بالاتر بود قرار گرفتند. و این دوره تشلیسی میگن یعنی دوره استگان پرستی مثلا در هندوستان برهما، ویشنو و شیوا برهما را خدای آفریننده قرار دادند و زیر دستش تعداد زیاد خدایان کوچکتر دیگر ویشنو خدای نگه و شیوا خدای میراننده در روم قدیم و یونان هم عقیده به همین سه خدای داشتند که هنوزم هم مسیحیان این مذهب تسلیس دارند ابو ابن روح القدس که میگن هنوز دنباله مذهب تشلیسیه. یعنی سگانه پرستی در ایران قدیم من پیش از زرتوشت داتا سرات و جناتا می گفتن. داتا یعنی خدای آفریننده سراتا خدای نگه و زناتا خدای زننده و میراننده که وقتی عشوزرتوست پیانبری برگذیده شد گفت این اشتباه است که خیال کنی سه خدا وجود داره این هر ستا صفت یک خدایه و اینه که در صد یک نام خدا ما اینها را اسم. می خونیم میخونیم افسا ناشا پرورا یا داتا سراتا جناتا پس بعد از مرحله تشلیسی یا سگانه پرستی انسان میرسه به مرحله سنویت یا دوگانه پرستی یعنی میگفتند چجور ممکنه شب و روز که با هم این همه فرق داره یک خدا آفریده باشه پس شب یک خدای تاریکی آفریده روز یک خدای روشن و شاد و خورن. گل و خار چجور ممکنه یک خدا آفریده باشه گل به این زیبایی که ما وقتی میخوایم از بویش استفاده کنیم تا بریم بشنیم یک خار میره تو دستمون پس این کسی که این خار را آفریده این دشمن بشری نمیخواد از گل استفاده کنیم یا هستی و نیستی میگفتن چجور ممکنه یک خدایی به ما جون بده و همین خدا به ما جون جون ما رو بگیره نه اینی که به ما جون داده غیر از اون خدایی که جون را گرفته و اینها ها میگفتن دو خدا وجود داره یک خدای خیر یک خدای شر ولی طوری که عرض کردم سه هزار و, و, و سه سال پیش یک پیغمبری برای اولین بار در دنیا پیدا شد و فرمود همه چیز را خدا آفریده اما وقتی شما به دنیا با چشم خودتون نگاه میکنید چیزها را متفاوت میبینید مثلا ما بشر وقتی با عقل خودمون به دنیا نگاه میکنیم از یک طرف میبینیم خداوند خورشید تابان ماه درخشان می... سبز... باغهای پر از میوه کوهای سبز و که باعث شادی و شعف ما میشه ما میگیم اینا خوبه اما از یک طرف میکروب، ویروس، قارچ‌های های سمی، حشرات موزیه، حیوانات درنده، زلزله، آتش فشان، و هزاران آفات ارضی و زماوی می‌گیم اینها بده زردوش فرمود هر دو اینها را یعنی اون چه که ما خیر تصور میکنیم یا اون چه که ما شر تصور میکنیم هر دو اهورامزده آفریده اما چرا میکروب و ویروس به نظر ما بده ما پی به عقل خدا نمیتونیم ببریم خدا دانای کله و عقل ما در برابر عقل او هیچه و ما وقتی پی میبریم که چرا خدا درد و ناخوشی و زلزله و آتش پشان را فریده که خود خدا باشیم و از فلسفه و به اصطلاح بخشش ها و آفری های او سر در بیارید و اشو در توش فرمود اون چه که ما نیک تصور میکنیم منتظبه به سپنتا مینو سپنتا یعنی بی در برابر اون چه که بد تصور میکنیم مربوط میشه به انگرامینو در, در فرصه قبلی از کردم که انسان مثلی که الان معتقد به مذهب توحیدی یا یکتاپرستی هستیم با وجود این هنوز قسمت اعظم دنیا گرفتار شرک و بدپرستی و خدایان متعدد هستند. و دین هایی که تا حالا انسان قبول کرده اول جماعت پرستی، بعد گیا بعد حیوان پرستی، بعد قهرمان پرستی، بعد دوباره شرک برای هر چیزی خدای قائل بودند، بعد کم کم این خدایان به سه بخش تقسیم شدند و مذهب تشلیسی یا سگانه پرستی به وجود آمد، بعد دوگانه پرستی به وجود آمد، و تقریبا، از 673 سال پیش که اشو اولین پیامبر دین یکتاپرستی ظهور فرمود اما مذاهبی که در ایران باستان به آن معتقد بودند و خبرش در کتابهای پهلوی و اوستا و به ما رسیده بدونید ها وقتی تاریخ را می‌خواستیم بنویسیم شروع کردیم به دوره غارنشینی بشر و اولی شخصیتی که بین ها در دوره غارنشینی به وجود آمد مرز بود و بهطوری که باز شاهنامه می‌فرماید نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان مرز بود سر تخت و بختش برآمد کوه پلنگینه پوشید خود باگرون و بعدش سیامک پیدا شد و بعد هوشنگ. اولین دینی که آریه ها طبق تاریخ به آن معتقد شدن دین هوشندی بود و از روی نوشته شاهنامه باز میبینیم رستم پهلوان معروف ایران که در زمان عشوزرتوشت در ایران پیدا شده بود وقتی ازش پرسیدند که بیا زرتشتی شو گفت به دین زراتش مرا ننگ نیست ولی دین به از دین هوشنگ نیست پس که دینی داشتیم دین هوشنگی و اینها مراعات خیلی دقیق آداب و رسوم اکثریت مردم را نمیکردند. از جمله نبر و ببر اینها سرشون نمیشد. توجه نمیکردن و رستم میگفتن من پهلوانم همیشه تو صحرا و بیابون و برای دفاع از مملکت هستم و هر شکاری که گیرم اومد در هر روزی هم که بود میخورم و بین ما زردشتیان مرسوم به کسی که مثلا نبور را میخواد مراعایت کنه نکنه میگه من هوشنگی هستم یعنی چندان توجهی به گوشت نبور و ببور و اینا نمیکنه این هوشنگ اولین کشی بود که آتش را کشف کرد و تاریخش هم می دونی. یک ماری جلوشون پیدا شد خودش خودشون یه که همراه بودن سنگ ورداش زد به طرف مار ولی سنگ به سنگ دیگه خود آتش رهید و این علف های اطراف که خوش شده بود این آتش کرد کم کم مردم استفاده از آتش را یاد گرفتن و وقتی انسان استفاده از آتش را یاد گرفت اولین کاری که کرد خوراکهای خام که تا حالا میخورد این دفعه شروع کرد به پختن و گوشت پخته مثلا چغندر و شرقم و حویج پخته اینا برای به خصوص پیرا مردها و پیر ها خوردنش خیلی راحتتر بود گوشت گوشت خام خوردن مشکل بود گوشت پخته راحتتر بود و این بود که عادت کردن دیگه مردم به پختن غذا و در واقع کشف آتش بنیان گذار تمدن فرهنگ بشر امروزه شد یعنی با آتش تو فلزات را استخراج میکردند از سنگ و کارهای بسیاری پس وقتی انسان استفاده از آتش را یاد گرفت اگر کسی میخواست ده یا آبادی بسازه اول در وسط آتشکده کده میساخت دورش خونه ها و مغازه های مردم را میساختن بعد اگر مردم صبح آتش لازم داشتند، می‌رفتند از آتش کده، آتش میآوردن خونه اجاق روشن میکردن، تنور روشن میکردن، کارگرها پیشورها کوره روشن میکردن و امور مردم به وسیله این آتشکده میگذشت و زمانی بود که تمام ملل متمدن دنیا دارای آتش بودند. یعنی بی از آتش نشده بودند دیگه کبریت هم پیدا نشده بود، وسیله آتش زنم هم خیلی مشکل بود و می بینیم در تاریخ هند و بین نهرین و ایران و مصر و تمام ملل متمدن آتش کده داشتند. مثلا یونانی ها آتش به نام آتش وستا معروب بود رومی ها آتش اولمپیا معروب بود که هنوز هم اعترام براش خواهر حالا اون زمان می دونید شهرها و ده ها در داخل غل ساخته شده بود اگر دشمن میخواست بر قوم پیدا کنه که قدیم حتی دهات و شهرهای اطراف همه دشمن یک دیگر بودند اگر میخواستن به, اون به مشل امروزه یک مردم دشمن را در مزیقه اقتصادی قرار بدن جاسوس میفرستادن تو شهر و او میرفت آتش کذاشون رو خاموش میکرد و اگر میخواستن برن یک ده یا شهر دیگه دوباره آتش بیارن دوشمان نمیذاش در نتیجه پخت و پز و جشن و سور و شادی و شب از اون قسمتی که آتشکادهشون خاموش شده بود رخ بر میبست و این مسئله که نیاکان ما از اون زمان تا حالا ذکر می کنیم میگیم وجاغت سعد باشه چراغ خوند روشن باشه این از اون زمان شروع شده بود بعد کم کم آتش کده شده بود جای مقدسی هر جایی که مورد استفاده مردم هست مقدس میشه مثلا میبینید این آبهایی که در موقع محرم این ظرف آبی که بیرون میگذارن شباک میشه میبینی زنها میرن چراغ روشن میکنن دخیل میبندن و همون بشکه آب چون مورد استفاده آمه مقدس میشه پس کم کم آتش کده جای مقدس شد و اعترام آتش فراده بر ایرانیان اون زمان واجب بود کم کم این بود تا زمانی که عشوزرتوش به پیامبری برگزیده شد پس این آتش کده از زمان هوشنگ که حالا تاریخش نمیدونیم چقدره برای که مردم از کجا آتش پیدا بیارن و هنوزم کبریت پیدا نشده بود زمان و حتی به طوری که میدونید این کبریت هایی که به هم میزنیم و آتش روشن میشه حرف 100 سال پیش یا 50 سال پیش در ایرانه و حتی قبل از اونم یه جور کبریتی بود به نام کبریت تفتی که تا تو آتش نمیداشتیم روشن نمیشد پس تا حدود 100 سال 200 سال پیش هنوز آتش کده ها در هر جای مورو استفاده بود یا اقلن می باسته هر کسی تو خونه خودش آتشی داشته باشه و یادتون قدیم وقتی که خوراک منتمام میشد شب اون خاکه میریختیم تو آتش تو رو آتش و آتش را دوباره خاکستر دورش می که فردا صبح دوباره با کبریت تفتی آتش روشن کنیم پس این اهمیت آتش و آتشکده تا حالا ادامه پیدا کرد و بعدا عشوزرتوشت هم کاری که کرد کمک کرد به ابقای آتشکده بعدا و اون این بود که وقتی از عشوزرتوشت پرسیدن این اهورامزدایی که میگی با چشم ظاهر دیده نمیشه پس ما چجور قبول کنیم ما تا حالا خدایی میپراستیدیم که مرعی و ملموس بود ولی حالا شما میگید که احرامزدار رو نمیشه دید آخر بگو ببینیم مثل چیه فرمود اورامزدار رو ما نمیتونیم به چیزی تشپیه کنیم مگر به نور و او هم نور همه نیر که شیدان شیده شید یعنی نور مثل خورشید یعنی نور خور محشید یعنی نور ما و شیدان شید یعنی نور الانوار و به طوری که میدانیم تمام مذاهب دنیا مذاهب توحیدی خدا را به نور تشمیه کرده در قرآن میفرماید الله نور از بالعرض خدا نور آسمانها و زمینه موسی وقتی بالا کوه تو رفت خداوند به شکل شعله آتش بر درختی نمودا شد و گفت در حضور پروردگار تشکیر همینطور مسیحیت میگن خداوند نور مهر و محبت و عشق و علاقه تمام مذاهب عالم نور را اهمیت میدن و عشوزرتوش پس گفت قبله شما نوره اول نور طبیعی بزرگتر مثل نور خورشید در روز و در شب نور آتش برای که در قدیم چراغ برق و گاز و هفتا نفت و اینا هم پیدا نشده بود و شب فقط مردم آتش روشن میکردن در حضور این آتش یک خوراک میخوردن و میخوابیدن و سهر دوباره پا میشدن و این بود که کم کم این آتش کده تا حالا باقی مون ولی الان ما نمیگیم این آتش تمام روز قبله ماست این مشعل فرهنگ و تمدن نیاکان ماست که ما میتونیم افتخار کنیم که چند هزار سال ما این مشعل فرهنگ و به دین و آین نیاکان ما را هنوز نگه داشتیم مذهب دیگری که بعد بعد از مذهب این هوشنگ پیدا شد مذهب مهرپرستی بود. و میدونید ما در تاریخ خودمون می‌خونیم که جمشید دین مهرپرستی را داشت. برای که باز در تاریخ می‌خونیم و در شاهنامه هم آمده است که لوهراش شاه پدر یا شا بعد از اینکه حکومت خودش را داد به پسرش در یکی از معابد اون زمان به سلا معتکب معتکف شد و شروع کرد به پرستش و میگه لهراس در اون معبد نیایش همی کرد خورشید را چون چون که بود گاه جمشید را یعنی این مذهب مهربرستی تا زمان لوهرشا در شرق ایران متداول بود و این خیلی مهم بود البته مهربرستی یک مذهب خیلی بزرگ شد و این مهربرستی یک نوع توهید مادی بود یعنی میگفتن خورشید این خدای بزرگ عالمیان و موجودات روز میده و اگر خورشید نباشه نه گیاه نه حیوان نه انسان نه موجودات دیگه میتونن زنده باشن پس معتقد بودند که خورشید یا مر خدای بزرگیست ولی در عین حال هنوز مذهب سنویت را ترک نتونستن بکنن و معتقد بودند که همین تاریک روشنایی روز و تاریک شب پشت سر هم میاد میگفتن خورشید هم یک دشمنی داره به نام تاریکی یا دروج و ای بود که با وجود این که یک نوع توحیدی بود توهید سنوی بود و توحید مادی حالا دنباله این آین مهر اگر شما در کتاب ها خونده باشید به قدری مهم شد که رفت به یونان و روم و کم کم وارد مذهب یهود و و اینا شد که امیدواریم در آینده پرست داشته باشیم در پرسه پیش راجع به مذهب یا مذهبهای ایران قبل از اشوذرطش در ایران یک مطالبی کردم راجع به مذهب هوشنگی و مذهب نیرپرستی اینها مذهب بودند قبل از زرتشت یعنی وقتی که اشوذرطش به پیامبری برگزیده شده بود ملت ایران دارای چندین مذهب بود ولی هنوز به مذهب یکتاپرستی نرسیده بودند. اینها خدایان زیادی در آسمان ها قبول داشتند و اینها را پرستش میکردند. یکی از اینها مذهب میر پرستی بود. در اول مر یعنی خورشید میگفتند و میگفتند که این خورشید خدای ماه و اگر خورشید نباشه، همه موجودات نباتی و حیوانی و انسانی نابود میشن و اصلا این زمین یخ میبنده و به واسطه این نور خورشیده که این موجودات میتونن زندگی کنن در نتیجه میگفتن نماینده مر در آسمان خورشید و نور خورشیده، و در روی زمین آتشه و میدونید یه مدتی قبل پوشنگ آمده بود و آتش را کش کرده بود و مردم هم اون زمان کبریت و چیزی نداشتن مجبور بودند شب که میشه برند در آتش کده و نور و نور آتش را قبله خودشون قرار بدن بعدن کم کم آمدند و نور خورشید را با قرص خورشید جدا کردند و میدونید ها بسیاری از این یشت ها مال قبل از ذرتشتی که بعدا دوباره چون به شعر درآورده بودند دوباره وارد دین شد و میدونید ما مهریشت داریم و خورشیدیشت که بعدا مهرنیایش جداه خورشید نیایش جداه پس مهر به معنی نور خورشید بوده و این دین مر پرستی از زمان جمشید شروع شد تا زمان لهراس پدر شاگشتاس میدونید دین زرتشت در زمان شاگوشتاس رواج پیدا کرد و لهراس خودش دین مهر پرستی داشت به طوری که حتی در شاهنامه میگه بعد از اینکه که لهرازشا تاج و تخت خودش را به پسرش گشتاس داد در یک آتش کده در شهر بلخ شروع کرد منظوی شد، معتکب شد و شروع کرد به عبادت خدا کردن البته خدای اون زمان مهر بود و در شاهنمان میگه این لوراز وقتی که به اون آتش رفت نیایش همی کرد خورشید را چنان چون که بود راه جمشید را یعنی مر, مر یا خورشید را عبادت میکرد همونطوری که از زمان جمشید شروع شد پس این دین پرستی دین خیلی بزرگی شد به طوری که حتی میدونیم در زمان حخامنشیان اشکانیان حتی زمان ساسانیان هنوز دین پرستی در ایران بود و یه عده زیادی خودشون را مهرپرست میخواندند پس بعدا مهر به معنی نور خورشید و صفات خورشید شد مثلا راستی و درستی نگهداری عهد و پیمان دیگه قضاوت اینها همه به میر نسبت میدادند و این پرستش میر حتی در زمان هخامنشیان به یونان و روم هم پیش رفت حالا خیلی مفصله اگر خواسته باشیم اصول و فروع دین میر را بگیم خیلی طولانی میشه ولی همین قدر عرض می کنم که همون طوری که بعدن امشاسپندان را هفت امشاسبند می دیم پرستی هم شروع کردن به هفت اصول دین و تعیین کردن و میر روز اول را رو روز تولد میر می دونستن. حالا لازم از ارز کنم که یک روز یکی از اروپایا که در سوئد زندگی میکرد مخصوصا آمده بود در ایران که ببینه این شبی که به نام شب یلده معروفه و اونها میگن شب تبلد مهره ببینن ما چجور برگزار میکنیم آمده بود پرسون پرسون پلو و می گفت که ما بالاتر از سوئد و نروژ می به قطب شمال اونجا سالی شش ماه شب و شش ماه روز و اول دی که می شه یک ذره نور آفتاب بعد از شش ماه شب یک ذره نور پیدا میشه در و دور میگرده. برا... در قطب شمال خورشید بالا نمیره. میگه دور میگرده. روز بعد یه قدری خورشید بالاتر میاد. روز بعد بالاتر میاد تا بلند به وسط آسمان. پس اینا گفتن که نشون میده که یک زمانی ایرانیان در حوالی قطب شمال زندگی میکنیم. او... و, و ایرانویج برا... میگیم مسکنه اصلی آیه ها بوده و میگیم اول ماه دی روز تولد جبی مهره جبی و, یا... و تلی... حتی هم این یا... یلدا ها... که میگن این زبان آرامی برا... و عربی از جبی ولده جبی یا... میاد تلی... یعنی تولد روزه... مهر و میگفت اگر کسی در اونجا باشه میفهمه که تولد مهر یعنی چه و بلاخره اصول دین دینمه را گفت و استفاده میکرد خیلی مفصل هم هست شد ولی چه کنم. این عقید راپر ایونان و روم و میبینید بعد وارد مزمه مشیریت شد و اونا هم روز اول ماه دی را رو روز تولد مشیح میدن خیلی مطالب زیادی در این باره هست طوری که تا زمان لوهراسجاه پدر گشتاس دین مهر پارسی روایت‌هاش تا زمان ساسانیان نبود در غرب ایران ها یک مذهب دیگه داشتن به نام مذهب ناهیدپرستی و تونیومی عربی سور ناهید فرش ما میگیم فرشته موکل آب ولی اونها میگفتند خدای آبه و میگفتند چشمه همون طوری که مادر شیر میده به بچه چشمه آبم شیر میده به گیاه و نبات و انسان و این آبی که ما را زنده نگه می‌داره هم گیاهان و هم حیوانات و هم انسان و بعدا میبینیم این عقیده وارد عقیده عربا شد و اونها میگن من الماء کل و هی یعنی از آب از که تمام موجودات زنده هستند در صورتی که ما میگیم از چهار عنصر ولی اونها آب را خیلی میتونند و چون در ساحل رود دجله و فرات اینها بودند آب تولاده براشون اهمیت پیدا کرد و چون ناهید را زن تصور میکردن هر جا عبادتگاه درست میکردن یا هر جا آتشکده درست میکردن این را به نام آتشکده ناهید یا زیارتگاه ناهید میدن و بعدا هر جا ما در ادبیات دین زرتشتی یک زیارتگاهی به نام زن میگیم این عصرش مربوط میشه به ناهید مثلا این ستی پیر ستی یعنی مادر بزرگ یعنی پیر مادر بزرگ حالا اگر بگه که اون مادر بزرگ کیه باید بگیم همون عردویسور ناهیده یک زمانی خدای بزرگی حساب میشد این دین ناهید پرستی باز بود تا زمان ساسانیان ادامه پیدا کرد یکی دیگر از مذاهب معروف پیش از زرتوشت دین زربانی بود که در عوستان میگیم زربانه اکرنه زربانه در او خداته و مردمان پیروه این دین البته اینا پیش از زرتشتان خیال نکنید این عقیده بعد از زرتشته اینها معتقد بودند زروان یعنی زمان و در روزگار و همونطوری که بعدن میگیم خداوند آغاز و انجامی نداره پدر و مادری نداره اونها میگفتند زروان یا زمانه آغاز و انجام نداره پدری نداره کسی نبوده که او را خلق کنه و زمانی که زندگانی ما را در دست داره و بعدا در ادبیات ما هم روزگار که گه عزت دهد گهخار دارد همون روزگار یعنی زروان و اینها تقریبا مذهب تشلیشی داشتند یعنی شگان پراز بودند و میگفتند از ضروان که مبدع خیر و شر به وجود آمده. اونچه که ما خوب و بد میدونیم میگفتند از ضروان به وجود آمده و زروان را پدر میخونند و اون دوتا را فرزندان زروان میخوندند که وقتی اشوزرتوشت اشاره میکنه به اون دو گوهر همزاد همون دو گوهری بودند که در مذهب زربانی ها از زروان به وجود آمدن ولی اشوزرتوش گفت نه این از شکم زروان این دو مبدع خیر و شر به وجود نیامدن بلکه از نظر دید ما به نظر و دنیا آمدن ما, و... ما وقتی با نظر عقل به دنیا نگاه میکنیم بعضی چیزها رو خوب تصور می کنیم بعضی چیزها رو بد پس نیکی و بدی از عقل و خرد و چشم و وسیرت ما به وجود آمد خداوند میون مخلوقاتش خوب و بد قرار نداده بلی این اینها کم کم آمدند وقتی برای اینکه توضیح بدن که زربان یعنی چه گفتند زربان اول زربانه آکرانا است آکرانا یعنی بیکران بی پایان و ما نمیتونیم بگیم اول آخر زمان کی نه اول داره داشته نه آخر خواهد داشت ولی برای که باز بفهمند میگفتند هر دوازده هزار سال یک بار این یک دوره زروانی تمام میشه و میشه زروانه درق و خداته یعنی زمانه دیرپا و مثلی که سال را به دوازده ماه از زمان جمشید تقسیم کرده بودند اینهام گفتند که یک دوره زروانه عکرنه دوازده هزار ساله و هر دوازده هزار سال که تمام میشه میره در بد زربانه اکرنه زمانه بیوایان و دوازده هزار سال دیگه شروع میشه و این زربانی ها بودن تا اواخر ساسانی و مخصوصا بندهش را اگر بخوانید میبینید تمام عقیده زربانیه یا زاو پرم همینه و بعدن که اعراب وارد ایران شدن اینها باز مذهبشون بردن تو مذهب اسلام و فرقه اون جبری و قدری از اینا داشتن که که معروفه میگن اگر به هر سر موید هنر به سن باشد هنر به کارنه آیت شو بخت بد باشد بعدا این ذروان را به بخت و اقبال و چانس و روزگار و اینا چی کردن حالا علاوه بر این ذروان تواش را هم یک خدا میدونستن تواش یعنی فضا یعنی مکان که ما هم در پوستا این خدایان بعدا به شکل فرشته در آمد و به اصطلاح تنزیل رتبه پیدا کرد. طوری که اینها در مغز و غلب ایرانیان به اصطلاح گنجانیده شده بود و به این آسانی نمیتونستند رها کنند. و وقتی مذهب جدیدی میگرفتن اینها با یک درجه تنزیل اینها را فرشته میکردند. پس تواش دو قسمت داره تواشه درقو و خدا تای تواشه اکرنه یعنی فضای بی پایان و فضای محدود و فضای محدود را این زمین ما می و می این فضای محدود ولی فضاهای اکرنه یعنی بیپایان هست و چون میدونید ایرانیان از قدیم در ستاره شناسی هم مهارت داشتیم اینها اعتمال داره که کرات دیگر ستارگان دیگر را درک کرده بودن کشف کرده بودند و میدونستن یک موجودات فقط نورانی نیست بلکه یه جای شبیه زمین ما و اینه که اینها میگفتند تواشه عکرنه یعنی فضای بی پایان و تواشه درق و فضای محدود و یکی دیگر از اون خدای تشلیسی اونها نور بود که انقره روچا میگفتند یعنی روشنایی بی پایان روچا همون روچ و روز و روشنای و اینا روزنه و اینا از این کلمه میاد پس روچا یعنی روشنایی بی پایان و اون هم به دو قسمت تقسیم کرده بودند روشنایی اکرنه و روشنایی درق و خداته روشنایی درق و خداته یا محدود را خورشید ما می و می این خورشید نور میده به سیارات و زمین و اینا ولی روشنایی اکرنا یا انقرا روشنایی بی پایان زیاده و این دانشمندان اروپا را به تعجب باداشته داشته که آیا ایرانیان در اون زمان میدونستند که فضا لایتنائیه و خورشیدها هم زیاده انقرا یعنی روشنایی بی پایان یکیش خورشید ماه و میگن که ایرانی ها پیش از زرتشت حتی به درجه رسیدند که درک کرده بودند که فضای آفریده خدا بی پایانه خرشیدهای بی پایان وجود داره و فضا و زمان محدود نمیشه و ما نمیتونیم بگیم آغاز خلقت کی بوده و پایانش کیه پس ما ز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم اول و آخر این کهن کتاب افتاده است اگر بگیم خداوند اول آدم را آفرید بعد هوا را آفرید نمیدونم بعد چی میشه اینا همه تئوری و فرضیه دانشمندان قومیه که گاهی اینها در مذهبم وارد شده و خیال میکنند اینها جزء اصول مذهبه. در صورتی که اینها فرزیهایی است که بشر اولیه هر قومی داشته و هر قومی به فضیه خودش یه چیزی تصور میکرده. البته باز راجع به زربانی خیلی صحبت میشه کرد. بعض کردم حتی بعد از اسلامم. حاضر و هنوز هم دانشمندان و شعراء ما معتقد به سرنوشت و غذاب و قدر رو نمیدونم ایناست و میگن که ما باید تسلیم روزگار بشیم و به طوری که یکی از عرفای اسلام که معتقد به این قدری و جبری است میگه اگر زکو فروغ التداسیات سنگی نه عارف هست که از راه سنگ برخیزد یعنی اگر از کو سنگ میاد اگر عارف باشی خدا شناس باشی از راه سنگ پا نمیشه بگو خواست خدا بوده قضا و قدر بوده سرنوشت این بوده